شاکرای پنج، کلمات جادوی، مکان گلو، موضوع، کلام، ابراز وجود، صفات مطلوب، بیان حقیقت بدون حراس، اصالت، سخنبری، فساحت، کلام معفه ای از فراوانی است که اغلب نادیده گرفته می شود. موفقیت در مدرسه از کلاس اول به بعد با توانایی کلامی در ارتباط است. بسته به اینکه دو نفر چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند، روابط را موفق یا متزلزل می کند. شما احترام دیگران را با توجه به اعتماد آنها به آنچه میگویید به دست میآورید یا از دست می دهید. به طور خلاصه کلماتی که به کار می برید قدرت فقالادهی دارند. چیزی که مردم از دست می دهند جادوی در پس کلام است. کلمات جادوی هستند و نحوه استفاده از خواص جادوی آنها تعیین می کند که زندگی شما چگونه پیش خواهد رفت. هر کلمهی که به زبان می آورید رازی را پیشکش کش می کنند. چگونه واکنش های شیمیایی و بارهای الکتریکی در سلول های مغز به کلماتی تبدیل می شوند که در سر خود می مغز از عناصر اساسی مشابه سلول های پوست یا کبد استفاده می کند اما اجزای این سلول ها فکر می کنند و نه صحبت می کنند در زندگی روزمره این اسرار حل نشده باقی می مانند هیچ کس حتی به آنها اشاره نمی کند چاکرای پنجم که در گلو قرار دارد کدید جادوی کلام را با دیدن کلمات به عنوان عبارات به عنوان سلول های مغز بلکه هوش خلاق به شما می دهد. در اینجا آگاهی سعودتمند خود را به همه ی اشکال تجلی به ویژه گفتار تبدیل می کند. کلمات یا به شما کمک می کنند تا به زندگی مد نظر خود برسید یا شما را از آن باز می دارند. این ناخوشایند به نظر می رسد اما اجتناب ناپذیر است. نگرش فراوانی اگرچه مهم است کافی نیست. افکار، کلمات و کردار باید در مسیری به سوی کامیابی متجدی شوند. در بودیسم این مسیر با اندیشه راستین، کلام راستین و کردار راستین مشخص شده است. چاکرای پنجم به کلام راستین میپردازد. اما راستین در واقع به چه معناست؟ چند موضوع دخید است. گفتن حقیقت، مقاومت و مخالفت نکردن، حمایت از زندگی خود و دیگران، اشاعه سال، اجتناب از خشونت، همسو بودن با درمای خود. اگر مجبور بودید هر بار که دهان خود را باز می کنید به این لیست فکر کنید، به سختی می توانستید یک کلمه بگویید. اما سیستم چاکرا با گفتن اینکه کلمات زمانی راستین است که کیفیت آگاهی سعادتمن را حفظ کنند، موضوع را ساده می کند. پیروه سعادت خود باشید در هر چاکرا صادق است، به خصوص در اینجا. با این راهنمای درونی می توانید جادوی خوب را در کلمات ترویج دهید و از جادوی بعد اشتناب کنید. جادوی خوب یا بعد هنگامی که کدمه ای را به زبان می آورید یا از جریان هوش خلاق حمایت می کنید یا آن را مسدود می کنید کدمات این جادو را دارند که هر موقعیتی را در جهت درست یا نادرست تغییر دهند دوستت دارم زندگی های بیشماری را در جهت درست تغییر داده است. نه موقعیت های بیشماری را به جهت اشتباه سوغ داده است. با این حال هیچ قانون مشخص و پیشبینی شده ای وجود ندارد. همیشه بدگفتن گفتن تواند به اندازه همیشه نگفتن نتیجه بدی به باراورد. شما باید آگاه باشید که وضعیت خاص چگونه پیش می روید و چه چیزی ضروری است. خوشبختانه این موضوع به آن اندازه که به نظر می مرموز نیست. جریان هوش خلاق از جادوی خوب حمایت می کند. کلمات شما در هر شرایطی با بهترین نتیجه هماهنگ خواهد شد. جادوی بعد برعکس است. بعد، معنا خبیس بودن یا از نظر اخلاقی اشتباه بودن نیست. بعد به این معنیز که شما از مسیری که هوش خلاق می خوهد طی کند منحرف شده اید. سیگنال های ساده و به راحتی تشخیص پذیری وجود دارد تا به شما نشان دهد که چگونه یک موقعیت تجلی می یابد. جادووی خوب زمانی موثر واقع می شود که فضا آرام است. فرد مقابل زبان بدن خوبی را نشان می دهد سخنان شما با لبخند، تکان دادن سر و سایر نشانهای موافقت پذیرفته می شود از آنچه چه می گویید لذت می برید. مسائل رفت می شود احساس می کنید حقیقت خود را می گویید حس آرامش در فضا وجود دارد پاسخهای خلاغانه در حال ظهور هستند همه نشانه هایی از همکاری نشان می دهند. احساس می شنیده و درک شده اید. تشخیص هیچ یک از این سیگنال ها دوشبار نیست اما اغلب به آنها اهمیت کافی نمی دهیم. در عوض حتی در قیاب جادوی خوب به سختی پیش می روییم. در نظر بگیرید که چند وقتی یک بار در مکالمات یا جلساتی خیلی دیر به خودتان آمده اید و احساس کرده اید که همه چیز از مسیر درست خارج شده است. این سیگنال ها هم به راحتی تشخیص داده می شوند. جادوی بعد زمانی معثر واقع می شود که جعب متشنج است. فرد مقابل زبان بدن خوبی نشان نمی دهد. از کلمات شما با نگاه های خیره و مبهوت یا سررفتن حوصل استقبال می شود. از چیزی که میگویید لذت نمیبرید. مسائل گیج کننده و پیچیده تر می شوند. احساس می کنید که حرفهای شما بی تاثیر است. احساس درگیری یا مخالفت در فضا وجود دارد. هیچ نتیجه ای در خصوص پیشرفت رو به جلو چشم نمیخورد. احساس نمی کنید شنیده یا درک می شوید. آگاهی از تفاوت جادوی خوب با جادوی بد گامه است. شما درک واضحی از نحوه عمل کرده کلام راستین دریافت می کنید. قدم بعدی این است که هوش خلاق را به کمک خود بیاورید. لازم نیست سعی کنید یک موقعیت بد را دستکاری کنید تا آن را در مسیر درست قرار دهید. همسو کردن خود با هوش خلاق از وقوع وضعیت بعد جلوگیری می کند. همانطور که خواهیم دید این طبیعی ترین راه است برای اینکه کلام شما منجر به مفقیت و کامیابی شود. جادو از کجا می آید ؟ اگر کاربرد یک واژه فقط معنای واژهنا آن بود دیگر جادوی وجود نداشت. اما واژه ها معانی دیگری دارند که از نظر پنهان است. مسالی که در ادامه میآورم را درباره تبادل کلامی سریع دو نفر در نظر بگیرید. شخص الف: تو دیدی کلید ماشینم را کجا گذاشتم؟ شخص به؟ نه. روی کاغذ این یک تبادل اولیه اطلاعات بدون هیچ منظور پنهانی خاصی است. اما در زندگی واقعی پیام بسیار متفاوت و مملو از مفاهیمی است که در زیر و پس هر کلمه پنهان شده است. برس کنید که شخص ای است که به طور اتفاقی دیر به سر کار می رود و شخص بی شوهر بیکار او است. او می پرسد کلیدهای من را دیده ای؟ بدون هیچ مفهومی برای مجموعه ای از کلیدهای گام شده. اما درباره نه او چطور؟ یک شوهر بیکار ممکن است از اینکه همسرش شاغل و او بیکار است احساس رنجش، افسردگی، تاسف به حال خود، حسادت یا قربانی شدن کند. بسته به آن احساسات، نه میتواند یک پاسخ احساسی باشد. به عنوان افراد خارجی که این تبادل کوتاه را میشنوند، نمیدانیم رابطه آنها چگونه پیش میرود. شاید مرد از یک شوهر خانه‌دار بودن لذت میبرد. نه او ممکن است فقط یک نه ساده باشد این چه چیزی را نشان می دهد؟ در هر کدمهی که صحبت می کنیم لایه های ارتباطی وجود دارد این جایی است که جادو وارد می شود زیرا انسانها به روشی اسرارامیز قادر به ارسال و دریافت انواع سیگنال های نامرئی هستند که در هیچ فرهنگ لغتی موجود نیست؟ ما اغلب فکر نمی کنیم که کلمات تا این اندازه قدرت دارند اما جمله بعدی که صحبت می کنید چیزهای زیادی در باب این گذینه ها می خلق و خوی شما رابطه شما با طرف مقابل نقش شما در موقعیت حالت تسلط یا تسلیم شما آنچه را که درک می کنید آنچه شما باید بیان کنید چقدر مایل به همکاری هستید و چه مقدار از احساسات را بروس می دهید یا آنها را دریغ می کنید؟ هر کلمه مانند نکه یک کوه یخ است که بخش امدهی از کوه یخ از نظر پنهان است. با این حال حتی در این سطح ارتباطات وجود دارد. ما چیزهای زیادی در زیر لایهی که مردم از ما می یا فکر می کنیم می حمل می کنیم. راک گلو جایی است که شما بدون ترس چیزی را که میخواهید بیان میکن. دههها پیش را به یاد میآورم که با نگرانی برای اولین سخنرانی عمومییم آماده می شدم. من احساس استراب می کردم. حتی اگر در دانشکده پزشکی و در طول دوره کارآوزیم با اطمینان در بارگ چیز صحبت کردم که یک پزشک باید در خصوص آنها صحبت کند. یعنی تشخیص بیماری درمان توصیه شده و تشخیص اولیه بهبودی بیمار اگرچه بسیاری از مردم اگر از آنها خواسته شود در جمع صحبت کنند بسیار مضطرب میشوند اما من نمی ترسیدم در واقع مشتاق بودم که سخنرانی خود را انجام دهم ولی مطمئن نبودم که هزار چگونه به من پاسخ خواهند داد اوایل دهه 80 بود اولین گام هایم در مراقبه و ارتباط جسم ذهن را برمی داشتم. دو موضوعی که پزشکان استی و بسیاری از مردم نسبت به آنها بدبینی یا خسومت آشکار داشتند. در این مرحله یکی از دوستان که به طور اتفاقی معلم مراقبه بود به من توصیه بسیار عرضشمندی کرد. مردم به آنچه میگویید پاسخ نمی دهند. آنها به آنچه هستید پاسخ خواهند داد. عبارت دیگر اگر من زیباترین و موثرترین کلمات را بگویم اما بسته، پرسیده و نامطمئن باشم پیامم بی نتیجه خواهد ماند. این جادوی نهایی کلمات است. ما میتوانیم به آنها جان ببخشیم. کلمات از آنچه در درون خود حمل میکنیم انرژی میگیرنده. کلمات فقط حروف و صداها هستند اما ما این قدرت را داریم که در آنها جان ببخشیم. با این حال اغلب اوقات ما با صحبت کردن به دلیل ترس، نداشتن اعتماد به نفس و نیاز به پنهان کردن حقیقت از خود و دیگران جادو را از کلمات خود پاک میکنیم. وقتی این اتفاق می افتد، کلام راستین به کلام نادرست تبدیل می شود، دروغ های چادویی بخشی از دستور کار ایگا ارائه خود انگاره قوی به جهان است. اما این تقلا شما را از خیش حقیقی دور نگه می دارد. اگر در سطح خیش حقیقیتان زندگی می کردید، اصلا به هیچ تصویری نیاز نداشتید. این کیفتی است که به عنوان اصالت شناخته می شود. کودکان به شیوههای آزاد و معصوممان اصلیل هستند. اما خیلی سریع میآموزند که قضاابت وارد در کار است. گفتن اینکه شما خوب یا بد هستید از زبان واردین و تکرار آنها به اندازه کافی زندگی را تغییر میده. پسر یا دختر خوب بودن انگیزه هر کودکی می شود احتمال شکست بسیار زیاد است کودکان بد ممکن است از نظر روانی برای زندگی با مشکلاتی مواجه شوند ولی سرنوشت آنها ثابت نیست یک کودک بد می تواند در سن خاصی ثابت کند که واردینش اشتباه کرده اند که می تواند به مسیر مثبتی منجر شود با این حال اغلب مواقع معکوس آن اتفاق می افتد بچه های بد دل سرد می شوند و احتمال کمتری وجود دارد که این را باور کنند. من کافی هستم. یک منطقه خاکستری بزرگ بین چنین برچسب های واضحی مانند خوب و بد وجود دارد. در داخل این ناحیه ما خودنگاره خود را ایجاد می کنیم که ناشی از نامنی ایگاست. بیشتر مردم، از طریق خود انگاره مجموعه ای از داستانهای تخیلی را در سر خود می پرورانند. من این داستانها را دروخهای جادوی می نامم. آنها منعکس کننده توانایی ایگو در فریب دادن ما افرادی که با آنها ارتباط داریم و به طور کالی جهان هستند در نتیجه ما توسط باورهای پنهانی هدایت می که هیچ مبنایی در خیش حقیقی بیکران ندارند لحظه ای درنگ کنید و در نظر بگیرید که کدام یکی از دروغ های جادوی ایگو ممکن است در حال حاضر شما را تحت تاثیر قرار دهد شبکه ای از دروغ های جادوی من تنها و از دیگران جدا هستم من یک روز به دنیا آمدم یک روز هم می میرم نیروهای بیرونی از هر طرف به من سیری می و خارج از کنترل من هستند. زندگی در برابر وسط کیهان زرعی بیش نیست. من درگیر یک جدال شخصی هستم. من به دنبال به حد اکثر رساندن لذت و به حد اقل رساندن رنج هستم. من تحت تاثیر خاطرات گذشته، آسیبها و شکستها هستم. من از شکست می ترسم. من در این بدن سال خورده گیر افتاده هم. من تزاد درونی دارم. من مطمئن نیستم که دوست داشتنی باشم. من مستعد استراب و افسردگی هستم. من در دنیای خطرناکی زندگی می کنم. من باید مراقب خیلی چیزها باشم. من از خودم مراقبت می کنم. میدونم که هیچ کس دیگری این کار را نخواهد کرد. من کافی نیستم. شما مجبور نیستید این چیزها را با صدای بلند بگویید. کلام انسان مملو از نکات و مفاهیم است. ما دائما در حال استنباط هایی هستیم که ممکن است گوینده بخواهد آنها را پنهان کند. اما درک مفهومی که در پس کلمات است این واقعیت شگفت انگیز را منعکس می کند که کلمات لایه از معنا را آشکار می کنند. آخرین تار از شبکه گتارهای دروغهای جادوی ایگا، من کافی نیستم، بزرگترین دروغ و همچنین قدرتمندترین است. خونسا کردن آن به یک کتاب کامل نیاز دارد. مهم نیست که هر دو نفر چقدر متفاوت باشند همه درگیر یک پروژه هستند. خلق داستانی درباره خودشان، تقریبا در زندگی همه افراد نتیجه یک در هم ریختگی گیج کننده است. جایی که تجربیات گذشته و امیدهای آینده با هر آنچه که امروز اتفاق میافتد در هم آمیخته می شود. در این سردرگمی بسیاری از مردم آنچه را می خواهند از داستانهای خود به دست نمی آورند. به عنوان مثال فرض کنید چنده است و تازه سر میز صبحانه حاضر شده اید. ماننده بسیاری از افراد قبل از اینکه اولین فنجان قهوه خود را بریزید کمی احساس کسالت می کنید. همسرتان می چطور خوابیدی؟ با کلمه بعدی خواد از مرز عبور خواهید کرد. داستان شما برای آن روز قرار است آشکار شود. افکار خود را با شخص دیگری در میان می و در بقیه روز سخنان شما متعلق به هر کسی است که با آنها تعامل دارید. فرض کنید در آن زمان علاقه ای ندارید چیزی را در میان بگذارید. بنابراین وقتی همسرتان از شما می که چگونه خابیده اید با صدایی صاف خوب را زمزمه می کنید و برمیگردید در یک حرکت که تنها چند ثانیه طول می کشد، شما کاری جادویی انجام دادید و احتمالاً کاملاً ناخداغاه اتفاق افتاده است. شما امکانات بی را به دنیای واقعی هدایت کرده اید. با استفاده از چیزی که آلوس حکسلی، نویسنده انگلیسی آن را دریچه کاهنده نامید، هزاران پاسخ ممکن را تنها به یک کلمه کوتاه تبدیل کردید. اگر این کار را به عنوان مثال پیش پا افتاده و بی اهمیت جلوه دهید، جنبه جادوی آن را دور می اندازید. در آن لحظه هزاران کلمه ممکن را به یک کلمه تقلیل می دهید. خب، شما ذره ای از هوش خلاق استفاده کردید، اما در واقع یک ذره نیست. داستان شما مانند یک هولوگرام ذهنی است که در آن کل تصویر توسط یک جزء کوچک پدیدار می شود. توانایی ساخت هولوگرام های ذهنی ذاتی است. در بد تولد به ارث می رسد و جهانی است. شما هر روز از آن استفاده می کنید. بخشی از یک تجربه که با دیدن یک عکس یا حتی تکی از یک فیلم در ذهن شما تدائی می شود. چهره کسی که دوستش دارید فقط مجموعه ای از ویژگی ها نیست. کل رابطه شما در این یک تصویر بسری فشارده شده است. اگر پیانو می نوازید با لمس کلید ها، تمام مهارت ها، تمرین ها و سریغه های موسیقی شما ظاهر می شود. برای فیزیکتانی که مجموعه ای از نماد ها را می ای مساویست با ام سی دو انقلابی را آشکار می کند که توسط نظریه نسبیت عام اینشتین به وجود آمده است. نتیجه نهایی این است که داستان شما بسیار گسترده تر از آن است که توسط ذهن یا ایگوی شما کنترل می شود. فقط حوش خلاخ پیشبینی می کند که داستان شما به کجا می رود. واقعا چه معنیی دارد؟ و کدام مسیر در طرح اصلی هستی برای شما مناسب است؟ کلام درست مربوط به کلماتی نیست که شما برای گفتن انتخاب می کنید بلکه در خصوص این است که کلمات از کجا آمده ارتقای داستان تو کلمات زیادی در داستان شما برای ارزیابی ذهنی وجود دارد گذشته، حال و آینده اما داستان شما دائما هولوگرام شما را نشان می دهد یا به بیان دقیق تا که با من کافی هستم یا من کافی نیستم مطابقت دارد یکی یا دیگری بر داستان شما حاکم می شود من کافی نیستم در این موضوع ها پدیدار می شود شکایت کردن، ملامت دیگران، فرار از مسئولیت، ارتباط با دیگران، مانند یک مستبد کتح فکر یا کمالگرا عمل کردن، حقیر جلو دادن شخص دیگر برای برتر به نظر رسیدن، دفاعی بودن، هرگز ضعف یا آسی پذیری را آشکار نکردن، از نظر عاطفی تعصبی عمل کردن، تحسین نکردن دیگران، بدبینی، ترس از سمیمیت و پایبندی کورکورانه به قوانی. هر کدام از این رفتارها در نوع خود خود خودقضابتی در لباس مبدل هستند. اولین قدم در ارتقای داستان خود این است که هر زمان که این رفتارها را بروز می دهید آگاه باشید. لیست طولانی است. بنابراین فقط یک رفتار را که فکر می کنید ممکن است انجام دهید در دفترچه یادداشت کنید. مراقب این رفتار باشید. شاید شکایت یا ملامت دیگران باشد. و در صفحه دفترچه خود بررسیش کنید این کار را به مدت یک هفته انجام دهید سپس تمایل خود به شکایت کردن یا ملامت دیگران را بررسی کنید قدم بعدی این است که هر وقت متوجه این رفتار شدید جروی خود را بگیرید توقف ساده اگرچه در ابتدا دشوار است اما بسیار معثر عمل می کند اگر وقت دارید، می توانید به مکانی ساکت بروید که بتوانید خود را متمرکز کنید و عمق آگاهی محض شوید. به عنوان مثال، والدینی که به سطوح آمده اند، می توانند با گذراندن مدتی در حمام به آرامش برسند. از آنجایی که کارما در الگوهای تکراری شکل میگیرد، تمایل خواهید داشت که دریابی چه رفتاری از جانب شما منعکس کنندگ من کافی نیستم از که اطرافیان شما آن را به خوبی متوجه شده اند. هدف اصلی شما فقط کاهش و حذف برجسته ترین باستاب هاست. هنگامی که به اندازه کافی احساس امنیت کردید با یک دوست صمیمی یا فرد مورد اعتماد گفتگو کنید و بپرسید کدام رفتارها در شما آشکار تر است؟ شما به دنبال پاسخی دلسوزانه و مفید هستید؟ نه انتقاد. از رفتاری که دیگران به راحتی در شما میبیند شگفت زده خواهید شد. چرا که ممکن است شما کاملا از آنها بیاطلاع باشید؟ از این درگاه استقبال کنید؟ زیرا با آگاهی بیشتر می توانید شروع به تغییر کنید. روی دیگر سکنیز وجود دارد که باید در نظر گرفت. هنگامی که خود خودقضاوتی کمی وجود دارد یا اصلا وجود ندارد، من کافی هستم در این موضوع ها پدیدار می شود. صراحت عاطفی و صداقت، همدلی با دیگران، بخشش و خدمت کردن، تحمل اشتباهات خود و دیگران. پذیرش آسان افراد دیگر تحمل نگرش و باورهای مختلف خوشبینی تمایل به اشتراک آزادانه اعتبار و شهرت خود از کسی در مقابل دیگران انتقاد نکردن قدردانی سخابتمندانه از دیگران استقبال از سمیمیت در روابط توانایی دوست داشتن و دوست داشته شدن ارتقای داستان خود با تقویت این ویژگی ها خوش است. توجه داشته باشید که برای کدام یک از آنها ارزش بیشتری قائل هستید و شروع به توجه به وضعیت هایی کنید که می توانید آنها را متجلی کنید. این جنبه از شما نیز است زیرا در یک الگوی تکراری قرار میگیرد. چنین الگوهای ناخداگاه و بی اختیار ایجاد میشونده. با دانستن این موضوع باید به دنبال فردی مورد اعتماد بگردید و بپارسید که کدام یک از این رفتارها را بروز نمی دهید. شاید برای اشتراک اعتبار و شهرت خود مشکلی نداشته باشید. در این صورت این ای نیست که روی آن تمرکز کنید. اما ممکن است از پذیرفتن افرادی که خیلی با شما متفاوت هستند راحت نباشید. پس این بخشی است که باید روی آن تمرکز کرد خودتان را مجبور به تغییر نکنید فقط قصد داشته باشید و به دنبال موقعیت باشید که بتوانید به راحتی پذیرش و قدردانی خود را نشان دهید با استفاده از هر دوی این راه برد از بین بردن جنبه های منفی و تقویت جنبه های مثبت به طور پیوسته یک روش ارتباطی با خویش حقیقی خود ایجاد کنید خیش حقیقی می که شما چه قصدی دارید و شاهد خواهید بود که ارتقای داستان شما با پیش رفتن آسانتر و لذت بخشتر می شود. مساحبت در خصوص روابط این که می یک رابطه سالم به برقراری ارتباط خوب بستگی دارد کلیشه ای شده است. اما اگر لحظه ای درنگ کنید کلمات ثابت ترین آنسور در رابطه شما هستند. شنیدن کلمات دوستت دارم شگفتانگیز است، اما کوچک ترین کلمه ای را در بر می گیرد که شما و همسرتان با هم رد و بدل می کنید. در مشاوره ازدواج رایش ترین شکایت این است که او گوش نمیدهد. البته این به معنای واقعی کلمه درست نیست. مگر اینکه در کنار گذاشتن دیگران مهارت داشته باشید، مهارتتی که متاسفانه به راحتی در یک رابطه طولانی مدت ایجاد می شود. شما دائما در حال گوش دادن هستید. شنیده شدن بسیار اهمیت دارد، وقتی شنیده میشوید به شما ارزش گذاشته می شود. خود کلمات، فرعی و اغلب بیرفت هستند. مردم میخواهند بدانند که اهمیت دارند، آنها میخواهند به خود اطمینان دهند که پیوند با شریک زندگیشان هنوز قوی و پابرجاست آنها به دنبال اعتبار در چشمان طرف مقابل هستند اگر مطمئن هستید که شنیده میشوید راه برای آشکار کردن بیشتر و بیشتر شما باز است سپس این رابطه در ساحت خیش حقیقی آغاز به کار می کند وقتی کسی مشتاق یک رابطه معنوست یک این پیوند در ساحت خیش حقیقی رهگشه است وقتی یک رابطه شروع به از هم گسیختگی می کند، یکی یا هر دو طرف میگویند ما خیلی از هم دور شده ایم. گاهی بیان اعتراف تلخ است، گاهی نه، اما در هر صورت از هم گسیختگی به این معنی است که پیوند بین دو خیش یا دو زمیر از بین رفته یا قطع شده است. از سطح ایگو مشکل این است که من که شامل شیوه انجام کارها، نگرشها و اهداف در زندگی است نادیده گرفته شده است. دستور کار ایگو از مسیرش خارج شده است و شریک ناراضی به یک متحد جدید نیاز دارد تا آنچه را انجام دهد که من می خواهد. من میخواهم به روابطی بپردازم که در آن دو نفر میخواهند همه چیز به خوبی پیش برود و خواهان یک پیوند پایدار عاشقانه هستند. راه ایدئال برای حصول این هدف درک نقشی است که آگاهی ایفا می کند. اوش خلاق فقط از خلال افراد جریان نمییابد به همان اندازه در روابط جریان دارد. کلمات در اینجا نقش کلریی دارند، در هر لحظه می توانید کنترل جریان هوش خلاق را در دست بگیرید. ابتدا توجه کنید که چه زمانی کنترل جریان از دست رفته است. شما در حال از دست دادن کنترل جریان هستید. هر زمان که کلام شما ایجاد تفرقه و مخالفت کند. ابراز خصومت کند، استابب را در خود و شریک زندگیتان افزایش دهد. به اندوه کنونی کمک کند، مسئولیت و ملامت را به شریک زندگیتان منتقل کند، دیگران را تحقیر کند، راه دیگران را صد کند، سعی بر تسلط و کنترل داشته باشد، قرغ در خودبزرگ بینی باشد. این نکات نتایج آشکار کلماتی است که شما به زبان می آورید و نمی توان آنها را به عنوان حامی زندگی به حساب آورد. من از کلمه شریک در این بخش استفاده می کنم اما همه چیز به همان اندازه برای والدین یا دوست صدق می کند. باید به اندازه کافی هوشیار و گوش به زنگ باشید تا از اتصال جریان آگاه شوید که ما به سرعت می توانیم عیب های دیگران را تشخیص دهیم اما در درک این موضوع بسیار کوتاهی می کنیم که آن چرا درباره دیگری دوست نداریم دقیقا همان چیزی است که در باره خودمان انکار می اگر انکار کنیم که کاری را انجام می دهیم که در دیگران محکومش می انکار خودمان زیر برچسب یک دروغ جادویی پنهان می شود. انکار و خودپرستی دروغ را زنده نگه می هیچ کس کاملا غرق در باورهای نادرست، انکار و منیت که در قسمت قبل فهرست کردم نیست، حوش خلاغ گاهی به سطح می آید. سپس کلمات شما رابطه شما را تقویت می کنند. وقتی با هوش خلاق همسو هستید، آنگاه کلام شما تجلی اشق و قدردانی می شود. شما را به شریک زندگیتان متصل می کند. حقیقت را بدون آسیب زدن بیان می کند. ابراز همدردی می کند. به حل مسئله کمک می کند. جوی مثبت ایجاد می کند، امیدواری و یاری پیشکش می کند، قدردان حدایهی می شود که به شما داده شده است. هیچ یک از این نکات ایجاب نمی کند که شما معفوق بشر یا مقدس باشید. والدین مهربان به طور طبیعی در تربیت کودک از این کلمات استفاده می کند. جایی در طول زندگی بسیاری از مردم به غلط فرا گرفتند که مانه از جریان هوش خلاق شوند متاسفانه این آسیب روابط شده است با این حال یوگا می که آگاهی سعادتمند پایدار و ازلی است مهم نیست که چقدر به سمت رفتارهای خود ویرانگر یا مخرب منحرف شده ایم جان بخشایشگر را نمیتوان خنسا کرد کلمات شما نشانگر سطحی از آگاهی است که با دستور کار ایگو تناسب دارد. در خصوص شریک زندگی شما هم همینطور اما در یک رابطه عاشقانه اساس پیوند اینگونه نیست. در عوض شما تابع جذابیتی میشوید که دخیش حقیقی برای یکدیگر ایجاد می کنند. وقتی این حقیقت را درک می کنید، متوجه میشوید که چرا رابطه شما وجود دارد؟ نه به دلائل خود مهورانه و منیت بلکه به عنوان تجلی از آگاهی سعادت سعادتمند لازم نیست که شریک زندگی خود را در این باره متقاعد کنید شناخت خودتان است و شما را به جان بخشایشگر وصل می کند اگر شما و شریک زندگیتان در یک مدار فکری هستید هیچ چیز زیباتر از تکامل دو نفر با هم نیست بهترین راه برای رسیدن به آن وضعیت تکامل در درون خود است. سپس شما مزهر جان بخشایشگر می شوید. احساس این که طرف مقابل در حال دور شدن و فاصله گرفتن است آزاردهنده است. به ویژه برای افرادی که ارزش زیادی برای رشد معنوی خود قاهلند. شکافی باز می شود و رابطه هرچه بیشتر نامتعادل می شود. سای می کنید از راهنمایی های افراد با تجربه پیروی کنید اما شریک زندگی شما چیزهای دیگری در سر دارد. اهداف و ارزش های دیگری در زمان معین، هنگامی که شکاف بیش از حد گسترده شود، رابطه ممکن است به طور جدی از هم بپاشد. رابطه ای که با امیدهای زیادی برای پیوند معنوی دو شریک عاشق شروع شد میتواند به همان اتهامات متقابل زشت و ناپسند و دلشکستگی ختم شود که در هر رابطه ناموفق رخ میدهد. شنیدن پیام یوگا ممکن است ناخوشایند باشد اما رفتار شریک زندگیتان باستا به موقعیت شماست؟ در حالت جدائی، این شناخت شما را قادر می که از مرامت دست بردارید و بر وضعیت آگاهی خود تمرکز کنید. جدائی ساحتی شفابخش است، نه وضعیتی منذوی که به دنبال برطرف کردن نیاز خیش در طرف مقابل باشد. دستور کار ایگا به روشهای ظریفی جدائی را تضعیف می کند، و آن را به وضعیت ایدئال های معنوی من در مقابل شکست های تو تبدیل می کند. خودسازی درونی همیشه شخصی، ذاتی و نامرئی است. با این حال، این بزرگترین کاری است که می توانید در رابطه خود انجام دهید. زندگی قادر است به طور کامل از خودش حمایت کند، وقتی از ایگوی خود جدا میشوید با زندگی در تمامیت آن مواجه می شوید. اعتقاد شما قدم به قدم رشد می کند تا زمانی که رازقایی آشکار شود زندگی و سعادت از هم جدا نیستند و یکی هستند فقدان و تمنا هرگز حقیقت را در کنار خود نداشته است فعال کردن چاکرای گلو این چاکرا هر جنبه ای از کلام و ابراز وجود را تقویت می کند. چند نکته که می توانید به طور کالی برای هر چاکرا انجام دهید اینها هستند. در آگاهی محض ساکن شوید. انگامی که متوجه شدید نیستید، چند دقیقه زمان بگذارید و خود را متمرکز کنید. بر منترای هام مراقب کنید. بر فکر متمرکز من آزادی بیان هستم یا من حقیقت خود را بیان می کنم مراقب کنید. سایر مراحل به طور خاص با هدف فعال کردن چاکرای گدو انجام می شود، شما دائما در حال طراحی داستان خود هستید و یوگا به شما میآموزد که بهتر شدن داستانتان در آگاهی حادث می شود. این کاملا به فعال کردن چاک گلو بستگی دارد تا بتوانید حقیقت من کافی هستم را بیان کنید. می توانید این کار را با تغییر آگاهانه خط داستانی انجام دهید که به خودتان می گویید. تمرین. پنج یا ده دقیقه از صبح را به تنهایی اختصاص دهید. با چشمان بسته بنشینید و خود را در برابر چالش در روز آینده ببینید. چالش فعلی را انتخاب کنید. موقعیتی که به نظر می رسد مشکلی دارد یا آنطور که می خواهید پیش نمی روید. در چشم ذهن خود یک معنی را تجسم کنید. می تواند یک شخص، یک جلسه آینده نقطه مقاومت و ارتباط نگرفتن باشد. بسیاری از ما در تصور سناریوهای بعد و تهدیدات پیش بینی شده مشکلی نداریم که از دیدگاه من کافی نیستم نشأت میگیرد. شرایط را طوری ببینید که گویی در حال تماشای یک فیلم هستید و اجازه دارید آن را کارگردانی کنید. بگذارید فیلم پخ شود. و وقتی به قسمت بعدی رسیدید، آن را به عقب بزنید. اگر کسی برای ایجاد موانع یا گده کردن وارد اتاق شده است، تماشا کنید که فرد به عقب برمیگردد و دوباره وارد می شود. شما یک انتظار پرتنش را آزاد می کنید و کنترل آن را به دست می آورید. این تمرین را آنقدر تکرار کنید که دیگر احساس نگرانی و یهست نکنید. کنترل روی تجسم راهی قدرتمند برای جاری کردن هوش خلاق است و هیچ چیز مهمتر از آن نیست. شما در هر موقعیتی که در آن قرار میگیرید یک خالق هستید و میخواهید نقش خالق را دوباره به دست آورید. در غیر این صورت، اوزا شما را کنترل می کنند. همین تمرین برای تقویت رابطه ها و موقعیت های موفق نیز کارساز است. به یک لحظه پیش رو در روز فکر کنید و آن را به عنوان یک فیلم ببینید. در این فیلم شریک زندگی خود را تجسم کنید که به خوبی رفتار می کند یا مشکل در هماههنگی کامل برطرف می شود. صحنه را به عقب بزنید و آن را دوباره پخش کنید. آنقدر این کار را تکرار کنید تا در مورد دیدگاه جدید خود احساس رضایت و اطمینان کنید. هر بار انتظار نتایج فوری یا بهترین نتیجه را نداشته باشید، اما تا زمانی که کنار بروید و اجازه دهید هوش خلاق بر اوزا مسلط شود، این روند تکامل خواهد یافت. هوش خلاق سرنق خود را از دیدگاه درونی شما نسبت به بهترین نتیجه میگیرد و همین برای بهبود داستان شما از سطح آگاهی کافی است که قدرتمند ترین سطح برای تغییر در جهت تکاملی است.